دو نفر و نسبی نویسنده و کارگردان یدالله سمدی تهیه کننده گروه سازی همراه موسیقی زند زندباف بازیگران فرامرز قریبی اون خالی نفه اش دادپور میشنا، نمیتونی می علی علیرضا خمسه لا نگیرم با یه تاکسی پژوی قستی دور دنیا رو بگردم آتنه فقیه نصیری همسرم کاترین برای تو فرزندمان سلام میرسانم اکبر دودکار بیزار بیاد نانشه بدم بریم تو مهد کدک مهری حدودان 25 سال است مربی کودکستانه و داره بچه ها رو برای گردش تفریحی توی پارک آماده می کنه. دختر کوچیکش پریسا که یازده ماه بیشتر نداره توی یک کالسکه سفید و قرمز قشنگ نشسته مهری موهای پریسا رو با گل سر زرد رنگ دومگوشی بزده و یه بلوز زرد رنگ تنش کرده پریسا بچه خوشکل و شیطونیه و مدام توی کالسکه اشتگون می و کالسکه رو مثل نعنو حرکت میده. یکی دیگه از مربیه های مهد بچه کچکه دیگه ای رو کنار پریسا توی کالسکه میذاره بچه ها یادتون باشه توی پاک یه قدم از من و زری جون و جون دور نمیمونین آخیل خوب یادتون مالا مالا میمونه آفرین باشه آفرین باشه حسن. سلام رسقا بله، بله. بچه ها رو توی دوتا صف ردیف میکنه و خودش جلوی اونا میه و دستاشو مثل بال پرنده ها باز تو بسته میکنه. بعد بر می گرده به سمت پریسا و پریسا نگاهش میکنه. میخنده. نظام بگیریم نظام بگیریم میخواییم پرواز پرواز پرواز بکنیم و بریم همه نظام پرواز پرواز پرواز پرواز پارک یه آب زیبا وسط پارک که چند تا مجزامی سفید روی سخراهای وسط اونجا درست کردن علیرضا کنار آب نمایستاده لباس اسپورت پوشیده دوربین اکاسیا قدیمی رو به گردن انداخته و روی یه تعدادی مکانیک برنز تهدادی اکشن راسنده بدرس کرد. حدود 26 سال است. مارچه چاقی با همراهی سرباز بهش نزدیک میشه. چاش چاش چاش آه خانه آها ها نه نه نه نه نه نه ها ها ها ها مهری هم با بچه های مهد کودک توی پارک هستند سه تا بچه به همراه مهری کالسکی پریسا رو حول میدن و شعر میخونند بچه های دیگه هم پشت سرشون در حال راه رفتنند مهری با دو تا مربی دیگه در حال کنترل کردن بچه ها و راه رفتنند چون تعداد بچه زیاده هر از شنگاهی کالسکی پریسا رو مهری راه میکنند داخل تاکسی خسرو خسرو به علی علیرضا راننده تاکسی اون حدوداً سی سال است سیبیل داره پیراهن سفید و شلدار پارچهی پوشیده. پشت چرا قرمز نیسته تاکسی قدیمی نارنجی رنگ کنارش توقف میکنه راننده تاکسی از پنجره ماشین با خسرو صحبت میکنه حسنه باشی مبارکه زنده باشی راضی هستی؟ منظورش ماشین خسروه کتالسی پجوه جدیده سه ساله ده ساله خسروه با دست عدد پنجانشون میده ما هیچده دارتمان دیگه بله لوازم چی؟ خیلی گرونه که حالا که نخواستی؟ قربانه چراق سبز میشه و خسروه حرکت میکنه دو تا مسافر توی ماشین نشستن پارک بچه ها توی محبته بازییان رو در حال تاب و سرسر بازی و شیطونی هسته. مهری هم با یکی از همکاراش کنار محبته روی نیمکدی نشست و حرف میزنه. بچه کوچیکی رو بغل کرده و با شیشه به شیر میده. که تو تاالا نگفته بودی. چی بگم الان چهار ماهه یه طلاق نامه قیابی فرستاد و یه نامه پر از عذر و بهونه و تموم حتی بچم هم ندید رفت. این روزا خیلیا، ها همه وجودشون اونجاست در حالی که خودشون اینجا زندگی میکنن تو هم گیری همچین خانواده ای افتادی این نامش با بقاحت تمام نوشته همسرم کاترین برای تو فرزند من سلام میرسانم بله ازدواش کن اموز خیلی جوونی. ازدواج کوچولو و واسهش بنویس. منو فرزندم و همسر ایرانی خوبم آرزو داریم تو و اون همسر فرنگی تو اون پدر و مادر بیو شفتو خوشبذ بنشینید. دایی سلطانی من. حرفای مهریو دوستشو میشنوه. علیرضا کنار همون آبنما در حال عکس گرفتن از یه خانواده کردی. زن لباس محلی قرمز پوشیده و آینه به دست گرفته و مردم با شونه از توی آینه مهاشو مرتب میکنه بابا خوشگذید دفت که نلم تمام میشه آینه رو نشکنید ماشین فوشگذید ماشین فوشگذید واله این بزرگی توشگه رو گرد دار خود رو اشاره میکنه میخواد غذا بخوره در مامم گوشه داره نشونه مرتب میکنه. ماشین خسرو. عکس هنریه، طبیعیه، چیکار لحظه است. نون با خودت سلامی. نون خالی نخواهش دارید، نمیشنار نمیتونی بخوری. <تصفيق> نه همین دیگه. همین. پنیر و هندونه هم داریم. واسه شستن دوتا تیکه زرف هر روز دونپنین حاضری غذای سالم عمر زیاد عمر زیاده میخوای چیکار؟ که بزرگ بشم که چی بشه؟ زن نگیرم با یه تاکسی پیجوی قسطی دور دنیا رو بگردم نه با تاکسی قسطی نمیشه با حکاسی تو پارک مسخره بازی تو تئاتر، لیچار بافی تو شهر بازی یه زن خونداره ویلاییه 300 متریه دو طبقه با آب و پارک آره برد. آره برویستنده اینام بیان اونم بچه توی پارک زن کلی جلی نمکت زانو زده و کف دست مهری رو گرفته بچه توی آغوش مهری به خواب رفته دوست هم کنارشه. خانم خوبی هستی اما تا حالا شانس نداشتی شوهرت برد رفته دیار و غربت دیگه هم بر نمیگرده. یه بچه داری دختره خوشگله. یه زن و یه مرد زندگیت پاشوندن شاید مادر رو و پدر باشن مرد ترسو بود دلش یه جا بند نبود دلش بیشتر پیش مادر پدرش بود تا زن بچهش خوب خوب خیالت نباشه زندگی جور میشه وقتت بلنده پیشونیت بلنده کار را میازه تارت میチャتت. باید تقلا بکنیم تا بکل به خدا کن. از دو ها دور کالسکه پریسا بازی می کنن و شروع به هل دادن کالسکه میکنن. کالسکه توی سر و زیر می افته. بچه ها دسته کالسکه رو ول میکنن. وقتی میبینن کالسکه دور میشه از ترس فرار میکنن. کالسکه از کنار یکی از مامورای پارک که بچه بچه‌خرس تربیت شده رو به سمتی میبره رد میشه. با فریاد مرد مهری و دوستش متوجه کالسکه میشن. مهری بچه رو به دوستش میده و به دنبال کالسکه میدوه دوستشم هم به همراهش میدوه کالسکه توی پارک با سرعت زیاد حرکت میکنه چون سرازیریه سرعتش بیشتر میشه پریسا هم از حرکت تند کالسکه خوشش اومده هیجان زده میخنده و جیغ میکشه مهری دنبال کالسکه میدوه مهری از کالسکه خیلی فاصله داره. کالسکه از کنار مردم توی پارک میگذره وارد چمنو میشه. از وسط سفری خزایی یه خانواده رد میشه اونا با وحشت بلند میشن و دنبال کالسکه میدوند اما سرعتش سیاد و بهش نمیرسن مهری هم به دنبال کالسکه از کنار چندتا مرد که در حال تمرین کاراته هستن میگذره حراسان همه جارا نگاه میکنه اما کالسکه رو نمیدوند خونای خسرو خسرو و علی به خونه رسیدن روی دیوار حال پر از اکزای چارلی چاپین و هنر ها و کارگردانوی معروفه علی جلوی آینه ایستاده و حوله رو, رو روی دوشش انداخته در حال شکلت دروردنه روی آینه سیبیل مصموعی موسیقی رو چسبنده و طوری قرار گرفته که تصویرش توی آینه سیبیل داره پتوهاش رو بالا و پایین می‌اندازه و چشم‌هاش چپ میکنه خس رو توی اتاقش در حال پوشیدن گربان سفیدشه. موهاش توی آینه مرتب می‌کنه. علیرضا همچنان در حال شکلک دروردن بود. <تصفيق> توی پارک پریسا توی کالسکش از خوشحالی جیب میکشه کالسکه به قسمت هموالی از پارک میرسه سرعتش کم میشه مسیرش عوض میشه و دوباره توی سرازیده میفته پریسا توی کالسکه خودش تکن میده و از حیجان میرخزه مهری توی مسیری که کالسکه حرکت کرده میدهد کالسکه به محوطه بازی از پارک میرسه که پله ها زیادی به سمت پایین داره. کالسکه از پله ها با سرعت پایین میره. پریسا با دسته کوچیکش کنارهای کالسکه رو گرفته. مرد توپ با رد شدن کالسکه از کنارش تعادلش از دست میده و روی پله ها زمین میخوره. همه توپهاش به همراه کالسکه از پله ها پایین میرن. خونه خسرم علی توی آشبازخونه است. سینی غذا رو میاره و بایی میس نبسره. خسرو توی حیات زیبای خونه که پر از درخت و گل و گیاهه و یه حوز زیبای آبی و سفید وسطشه در حال دونه دادن به کبوتراییه که دوربرش جمع شدن. علی رضا میز غذا رو میچینه. <مت toys> نهار حاضره پارک <yelled> <تصفان> مهری به پله ها میرسه پایین میره کالسکیل پریسا همچنان در حال حرکته مهریان به دنبالشه خالسکه از یکی از راههای بین چمن ها رد میشه و وارد مسیر اصلی پارک میشه مهریان با کمی فاصله وارد همون مسیر میشه خونه خسرو خسرو در آکواریومی که به شکل خونست و برمی داره به ماهیاش غذا میده پارک پریسا شاد و خوشحال میخنده کالسکی از کنار دوتا مأمور پارک که نیمکت های پارک رنگ میکنن رد میشه بعد از کنار بسات دستفروشی میگذره همه ناباورانه به دنبال کالسکی چند قدم میدون می اما سرعت کالسکی بیشتر از اوناست کالسکی به بساط فروشی برخورد میکنه و سیگاراشو به اطراف میندازه کالسکهٔ پریسا وارد خیابون شده به پشت اتوبوسی میخوره که ایستاده مسیرش بازم تغییر میکنه میره توی خیابون و سطح خیابون حرکت میکنه از کنار مرد پیر گدایی که عینک سیاه به چشم گذاشته و اصسو از, از گرفته رد میشه مرد وحشت میکنه. گربه از صفیتو طالب علی ترسته. من دیدمش از این طرف. نه نه نه. از این طرف. خانم خانم. مسیرش نشون میده. مهری مسیر غلطو میره. تاکسی پریسا سرعتش کمتر شده. از کوچه ها میگذره. وارد کوچه بونبستی میشه و مستقیم به سمت انتهای کوچه میره. از کنار وانت سفیدی رد میشه که مردی کنار وانت منتظر ایستاده کالسکه به در چوبی خونه انتهایی کوچه برخورد میکنه خونه خسرو خسرو و علی در حال خوردن غذا هستند که صدای برخورد چیزی با در رو میشنون به همدیگه نگاه میکنن علی بلند میشه پریسا رو به در خونه توی کالسکه خودش تکون میده. علی روزه در رو باز میکنه و متعجد پریسا رو میکنه. کنه بیا اومدم اومدم بابا بذارونم بچه هم کشی می زنی از خونه کناری بیرون میاد و سوار وانت میشه. شه مردم سوار میشه و وانت حرکت میکنه. کنه خوزلو بیا رو بیا شپر داری بیا اینه نیواش کن بزشتنی سرها یه وانیتی بود یه درمه این شهستی در رفتن زب دیگه از خونه همسای دیرون نه اندر رضا به خوز رو برمگرد کن رو خونه میشه سببا شما بیا تو نهاره کرد؟ کرد علی رضا به پریسا نگاه میکنه که در حال بازی بشه و خنده است داخلی خونه برای میبند هر دو کشت میز میشنن که قضاشونو گفتن که به صدای پریسا علی باز بازم بلند میشه و جویه در خونه میگه پریسا گریه میکنه و چشماشو با دستاش میماله علی در رو باز میکنه همه جایی کوچه رو نگاه میکنه فقط زن همسوگر رو میبینه که در حال دور شدنه پریسا گریه میکنه و با سر به علی اشاره میکنه که اونو بغل کنه خوصه؟ باز دیگه چیه؟ بیا. را بچه سر چیکار کنم؟ چه می‌دونم؟ ببینم یاد داشتی چیزی نذاشتن اینجا. آها، این مچمال چیه؟ این مچمال که؟ ای علی رضا. سرش درد اونندس بابا. چیکار کنم؟ دنبال سری بیا. یه جا بذارش هم در یکی از این خونه‌هایی که زن بچه‌دارن و بیا. علی رضا کالسکر را حول میده به سمت قسمت دیگه ای از گوچه چند تا مرد در حال بیرون آوردن وسیله از خونه کناری هستند. سر و صدای زنی از خونه به گوش میرسه علی رزا پشمون میشه به سمت دیگه ای میره در خونه رو باز میشه. پسر بچی از خونه میدوه بیرون. مادرش با لنگه کفش به دنبالشو کفشو به سمت پسر پرتاب میکنه. علیرضا بازم مسیرشو تعقیب میده و جلوتر میاد. می دست فروشی از کنارش رد میشه. آقا، پروشه؟ بله؟ پروشه؟ بله. بله. میخرمم. اگه این بچه رو میبری جایی تحویل بدی، کالسکش بله مال تو. معلومه چی میگی آقا؟ این چه معامله‌ کردنیه؟ نیستی بابا. بچه، من بچه نمیخوام، میکنی؟ چطور؟ بچه بلاخره داره باید تعویلش داد دیگر اگه صاحب داشتی سر راه نمیذاشتنش تعویلی کی بدی؟ تعویلی خیابون به انتهای خیابون میرسه ناامید روی پده میشینه و نفس زنان زانوهاش رو جمع میکنه خسرو و علیرضا توی به همهش درمه درداشت همه تو سلام علیکم تابنه صاحب این بچه نه از کجا بردی؟ قیداش کردیم انگاه برداشتنی سر راه قیداش کردیم؟ واح واح واح ماشالله دخترم که هست خودم گلامشم میدونی چی خود رو از شما چه پنهون زن ما بعد شیش تا پسر میگه یه جارو به دست ندارم دلش خیلی دختر میخواد خودم غلامم و زنم کنیز اینو برس به من شوخی گرفته شاه غلام بدیمش به کلانتری مسئولیت داره بابا بگیرش ببینم کلانتری هستش چی من مردم باید که تحویل کلانتری کردم دایی هم تحویل پرورشکده بده دیگه بابا را پرورشکده بگی رفتم بابا گفتن یه گردان بچه داریم به تو نمیدیم خب ما چیکار کنیم برو بابا برو از شلوغیام جدا میشه. مهری توی خیابون میدوه. از روی جوی آب رد میشه. از عرض خیابون میگذره. میخواد سوار تاکسی بشه. پیاده رو. از پنجرهی یک مطب زن میانسالی با لباس سفید با مرد مصری با, با کلاه و چرمی دیده میشه. با هم ارمانی حرف مزنند توجه زن به گریه پریسا جلب میشه خسرو و علی توی پیده از جلی پنجره مطب رد میشن از توی پنجره زن با آشون حف مزنی چیه بابا چرا قد درگه میکنی؟ یکم طاقت بیار تا تکلیبه روشن شدیگه لابا دلدی، گوش دردی، یه دردی داره دیگه از بابا مادرشو میخواف ساکت باش بچه چیه جرم؟ این بچه چرا گره میکنه؟ چه چه؟ از این در فیرهی نشتو مایی نشت کنم بازی جان دور با تیریبان بودم آرشتی نشت بابا بابا اونا توی مرتب هستن پیرمت به درانه بچه راه نمکشون میکنه گیر مرد بباشه سکیدرانه اونو بپوشه بچه رو روی تخت مایونهی توی اتاق بزن خسرو از پریسا دور میشه اما این ازای نگهش داشته وطر جروش ندید یکی گراپورو چایی شما چیه چرا؟ چرا گریه بفرمایی این شما نیست علی میره رو به خسرو روی سر زن شروع به مبهران نیستم میکنه بچه چندام شماست علی رزا سرشو تیکو میگه با به خسرو که میخنده نگاه میکنه یه بچه زبانشه بخواید بگه دلش ترت میکنه یه گوشش تب داره یه سرمکردگی یه گرست نشه نگفتم <تصفيق> علی رضا بود با آرنجان به پهلوی خسرو ضربه میزنه زن دوباره مشغول ماینه پریسا میشه پریسا بیتابی میکنه خسرو و علی رضا خیر زن نگاه میکنه مادر سبونی بچه رو بهتر میفهمه این بچه ایش نداره گروس نشه که دادی؟ نمیدونیم تغذیه غلط و استفاده نکردن از شیر مادر پایه نارسایی، ذهنی و هوشی در بچه هاست. آمار یونیسیف میگه 57 درصد بچه های جهان سبرون سه نه دارند. کارتشیش داره؟ هر دو علامت ندویستن سرشون رو تکمون میدن و از خودشون عدو در میارن. زن با حالت سرزنش آمیز بهشون نگاه میکنه و پریسا رو بغل میگیره و به خست رو خست رو پریسا رو در آگوش میگیره و دوباره میشه. با مادرش دواتون شده؟ خودتون از بوده بودتا امان اومدی؟ خست رو جوابی نمیده یه زنی شما رو زایده بزرگ کرد یه مرزم در تربیت شما سهم داشته پدرانی که فقط تولیده نست میکنن بیتر ازدواج نکنن به کمتر بچه داشته باشن خسرو از حرفای زن ناراحت هر شبه. اما به روی خودش نمید زن همه نوز خیلی نبیزه برخ کاری بچه هاست این بچه به هر دوی شما احتیاج داره. دیر میشه بسنمین دارو خونه. خیلی ممنون چجری بشت بدم؟ با خوبه. دیگه چی لازمه دیگه پوشک دورا بدم نه این بهتره از آها فستونگ از بیرون میاد وسایل رو توی کالسکه که جلوی در داروخونه گذاشتنش میزارند خسرو کالسکه رو حل میده و علیرضا پریسا رو بغل میگیره و شروع به حرکت میکنهد خیابون مهری هنوز توی خیابونا در حال دویدن و جستجو کردن پریساست از پیرمردی سؤال میپرسه اون مسیری رو نشونش میده خونه خسرو و علیرضا داخل قهف خونه هستن میخوان شر خشک درست کنن که پاییس بگذار. بابا بعد رو. حالا چه فرقی میکنه چه هست؟ بابا. یه ساعت باز شدیم اینجای چونه میزنیم بابا فا بچه زاد کرد. تا بچه بزرگ کردیم یه یه بچه. شیر خشکو باز میکنه. شیرو به درست کردنی شیر میکنه. خودش رو کشتن میزنه شسته بود. داره با شیشه به شیر. Re. معتادی هم روبروش نشید علی با تلفن عمومی کنار قهوه خونه داره با یک کارگردان حرف نیزنه پدر مادرمو بکرم و منم فیلم اشباه راقه است دیگه بعدی بعد, بعد, بعد, بعد یک بازی کردم دوره سربازی، دوره معصری اتفاقه تو دربستان کارگردانی هم کردم بله خیلی ممنون الان هم توی برنامه دارم اگه زیستشین تشریف بیارین فقط آدرس رو بدید این ماهه دیگه بسید تا اون موکه م... الو الو هر به به سندی کلانده میگن پروس بقل خسرو میگن چقدر بهت میاده ها استواری از کنارشون روحش داره یا نه جدی میگن چیلی تو بگو بابا بگو بابا سرکار استوار ببخشید سلام پاسه نباشید سلام جانم بپرموید میخواستیم مشورت خونه راستش من تا حالا پاهم به کلانتری نرسیده بود این بچه یعنی بچه رو میخواستیم تحویلش شدیم به کلانتری بله متوجه شدم البته وظیفه من نیست که اینجا جواب شما رو بدم اما بنوان و برادر بزرگتر عرض میکنم بی خود خودتون تو درد سر نندازن بچه مادر میخوا فعلا تحویل مادر شوشه تا انشالله آشتی کنه یا کار یک سر سرکار کنید سرپار رو یعنی سوء تفاهم شده. سرکار استوار نقل این حرفا نیست. این بچه رو گذاشتن پشت در. شما هم جوان، لاول برادر خانم یسونو دایی هستن ها؟ نه خیر. بله. نفع شما و خواهرتون یسون نیست که حالت میکنید. چشم ولی آ سرکار استوار توجه کنید. بابا این بچه رو مردن گذاشتن در خونه ما و رفتن. اونا همه اشتباه کردن. اولا پیداست که بچه بچه خودتونه. شما از سی 3 تصمیم میگیرین. ثانیاً چیه سوشر فردا تالی می و یه روزه انتظامی چرا کلانتری مهری توی کلانتری نشسته و گریان کلینیک مهد از این ساختوره قدیمی آرام باشید پیدا شده پیروزه جلی در کلانتری علیرضا به ساعتش نگاه نیمت بچه چه وضعی برام درست کرده علیرضا آقا من میگم باید برم به تمرین تاهات برسم. آخه بابا تاهات چه شوخی که نیست. با کسی شوخی ندارم. خیلی مهمه. اینو چیکارش کنم؟ کارم چی میشه؟ همینطوری ول میکنی میری؟ خسروخان پسرم میجان ها تاهات تاکسی که نیست که هر جا خواستم پارکش کنم. یه لشکر منتظره. من نرم تمرین تعظیم میشه. نوکرتم. یه جایی بذارش دیگه. چیکارش کنم؟ یه کارش بکن دیگه. برگردونید برم صورت خود رو می‌بینی سقم. عجب چند سالشه؟ هنوز یه سالش نشده 11 ماه ماهت یازده ماه چراش هم نخورده به زودی دستگیرش میکنه بیرون کلانتر خود رو پررس رو توی کالسکی گذاشت رو میخواد که بدون اون بره خونه اما با گریه پرستان نیسته بر می دلش نمیاد رحاش کنه به سمت پریسان میاد و میبردش جلوه در خونه شاقلان رو در میزنه زن شاقلان باز میکنه باز کنید سلام علیکم بفرماییم سلام راضیه خانم این بدشه رو پیداش کردم اگه میشه امشب و نگهش این تا فردا صبح تحویلش بدم خدا پدر در مدرتون رو بیا خان اینا رو چکار کنم فقط همین امشب و آخه شاغان می گفت که دختر خیلی دوست داریم. شاغلان واسه خودش گفته. حالا امشب اون گاهش تا تو فر خدا رسونده این عمنی گرشداری. خداش بیشتر رسونده بستنی تو تو می چجوری می حالی مم. مم. می اینین بزرگ میشن؟ حال میدونم این یکی هم روش. مم. او که دیگه تو این کار اصلا شدی دختر این چقدر شنگی این نگاه کن دختر و نداره که سر پیری بچه میخوام چیکار کنم ببخشید خوز رو خود رازیه با عصبونیت داره خوز رو خیره بده بچه همچنی دیگه هست یعنی بسم الله بله آدم چه میدونه اونی رچه در هر خونه دی تو بیا حیر و از دری دیگه فرار میکنه چه داری درش سر دیوار خراره یکی دی اخه ممکنه گیره گدامده ها بیفته یا موش و گربه بخورن تفت محسومو پس حقالا این استشادو امزه کنیم با که ثواد مواد نداریم استشاد دروق هم نمیدیم ببرش کمیسری خود رو خوان آره ببخشی میگم خود خان شما که یه باقره شده رسی سوید خونت داری یه ایونکیرم فناش بده هم مونستت میشه هم که شاید خدا خواسته وسلم یکیرم کردی آخه من که بچه داری بلد نیستم گفتم فقط تا فردا صبح <تصفيق> خب آخه احیال ما کنو بچه داری نکرده بله اخری کی باید یاد بگیره نه عروس خانم بچه خدا درم فرق می کنیم ببرخید بایجاز کنیم خواهش میکنم پس اقلا این استشاده امزا کنیم بقید من که چیزی نقیدم چیره امزا کنم ببرخید ببرمایی ببرمایش بایجازت خیابون مهری از عرض خیابون رد میشه. همینطور اثر خسرو توی ماشینش نشسته و پریسا رو بغل کرده. مسافر سوار میشه. خسرو پریسا رو به مسافر میده که بتونه رانندگی کنه. مسافر با پریسا شروع به بازی میکنه. با خسرو میخنده. خسرو جلوی در خونه خالش میذسه. پریسا رو توی ماشین گذاشته و پیاده میشه. از پله ها بالا میره. زنگ در خونه خاله رو میزنه. جراح دخلش که معده کوتاه و کچلیه، با دو تامین میونه به دستشون میرسه از از های جلوی در خونه بالا میره. شروع به باز کردن در خونه میکنه وقتی که در باز میشی کنار در هست. سلامویسه شما. قربونت برم خوش بچه‌جان. چی عجب این طرفا؟ درم قائم شده بود. یه کاری هم داشتم با خاله قری داشتی؟ چی شده بیزر بیاد یه بدم بریم تو؟ نه، باید دارم. با خاله کار داشتم. هر دوته زنگ زدی؟ آره گفتم اگه قرر باشید لابت خالی بالاست یه خاخت در کناری رو باز می و بود بسار دو بسر خاله چونش کی بردشتی؟ نالتا بگیر خارزادت آمده سلام خاله چون می شد دوتا بینیویز روی حساب تو کی حسابت پر شده بابا پر شده که پاک شده بینیویز روی آب. سلام خاله اجلی خواهرم تا الان یک سال و نیمه اگر نمیگی یه خاله پیری این بوش کنار بی و بیار افتاده تو اصف کس کار برای خودت ما گذاشتی؟ ادب با تو چی کسی با تو خب بگو ببینم لاب کارت گیر افتادی این اومدی نه بله دیگه گرفتاری نمیذاره که کار و قصه تاکسی و... بلاخره من که بزرگتر از شما ها کسی رو ندارم بعد اون دختری که رفزنی یه بازاری شد دیگه توبه کردم که برات خاستگاری برم همینبی میگفتم قدم من نظ بوده نه خارج جون راست بچه پیدا کردم تو ماشینه اومدم اگه زحمتی نیست امشبو گهش داریم تا فردا برم تغییرش کنم یه خیلی بیاگیر میتون تو بیا تو مشکل خانواده منه تو بیاگیری میتون اول شما قرار کردی شما بیاین خیلی خوبه اینم داخل دری میشن که باز کرد در کشت سرشون همینجان زبون تو گفت میکنی بادی ما تا حالا از این بدنامی نگشته حالا چی معلومه که بندی خدا خدایم کرده باشه باشه بازم زبون تو گفت میکنی فهمیدی آره قول دیا. خود رو بیرون در منتظر امردنم دارم نگران پریستاز که توی مرشون هشتی ها باش خالف و شهر خاله بیرونی بیرون مبارک خسرو جا هر که <تصفيق> مبارک نیست باید دیدین بچه از کجا اومده مادرش کیه؟ همینطوری که مبارک نمیشه حالا یه امشب و نگهش داریم بعدم میام مفصل تعریف میکنم ما رو بیار میروم این بچه چی بره بره بره بره خسرو از پله ها پایینی رو که پریستارو بیاره هر دو با نگاه خسرو رو دنبال می‌کنی. بالا خودم فدم می‌گاری می‌دارم. می‌بینی بالا؟ قرار چه باه زندگی بکنیم آخه تو سیگار می‌کشی مریم خوب نیست. خور خورم که می‌فهمی. هر وقت خیبا چرا ببینیم بیا بالا. نه، اینجوری نشیم. بیا تو، بیا تو. باشه چی؟ بیا تو کار دارم. همینجا بگو. قرار شد آشتی کنیم بچم هر دوتامون رو سرگشت میکنه. نه اینکه فقط تو رو که من گفتم نمیخواید بفوتش بریم خرجدی توی من بفرستمش بریم معلوم نیست حالا کی نننش کیه. خرجش من بدم بعده فکرش تو بکنی ها حاش تو بچه بزرگ کردم کیپشم کردم منم هم, هم, هم کردم تمام جیلان وازندرانه زیر پا و چنگی چره چوچی خوبه خوبه اینقدر ادا ادا نکن دیگه از این در عادی رو گذاشتم دیگه نه در زنی ها هی بوس بوس بکنی منتمال نکش من نپدیشم من अरे برو بابا تو برو برا همه توی من عارجه اندر هر دو وارد خونه میشند درها رو به هم میکوبند خسرو در حالی که پریسا توی بقلشه کنار ماشین مات ایستاده و اونا رو نگاه میکنه بازی شبه تمام دستگاه های بازی و تفریحی شهر بازی روشن هستن و کار میکنه وسط شهر بازی رزا در حالی که لباس قبوسی پوشیده روی بازوهای بلندی که حدودا دو متر ارتفاع داره نشسته بود زیرش روی زمین یه استخر آب مصنوعیه مردم باید با پرتاب توپو به هدف زدن بازوها رو خم کنن تا علی توی استخر بیفته علی اون بالا در حال شعر کری کوری میخونه در حال امتحان کردن هستن اما هیچ توپی به هدف نمیخوره مردی جنو میاد توپ و پرتاب میکنه خسرو با پریسه کنار مردی دادن دارن علی رو نگاه میکنن آخرین ضربه توپ به هدف میخوره بازوها خم میشن و علی داخل استخر آب مصنوعی میفته ماده. علی رضا خیز شده از سخت بیرون میاد همه در حال شادی کردن هستن داخل ماشین علی رضا کنار خسرو که رانندگی میکنه نشسته و پریسا رو در آغوش گرفته بخشی یه هم بالاخره این بچه شکار بخونیم امروز با هم رفتیم سر کار یکی دوتا مسافره نوناب دارم به این خوب بچه خوشقدمیه یام تا خابه ببرینش بزریم گوشه داره کمیطری بریم ها نه خدا رو خوش نمیان باشه فردا <تصفيق> میگم روتو بگیرون و رأس کوه سرما تو به بچه نده برش خانومه اسمش چی بود بالاخره هیچ چی خانوم کوچولو چراغ رو خسرو چراغ داخل ماشین رو روشن کرد. پریسا پریسا خانومه. <تصفح> روی دستفندی که به دست پریسا اسمش نوشته شده. خونه مهری. مهری توی تراس خونه نشسته و غمگین و ناراحت سرشو به دیوار تکیه داده. خونه‌ی خسرو. علیرضا توی آشپزونه است. دیگه. ایلام توی تویش امضا نمی‌کردی؟ 14 تا امضا می‌دید ام میزورش. برمی‌داره می‌بره حوزه انتظامیش. سلامو آواجه من چ چیکار داری؟ با من مگه دروغ می همه همساام میش مثله میدونن ازد اغلی حتتی و بچه بچه نداری. این بچهرم بنا به اظهاارده خود تو شاهر گذاشتم بشت داره رفتن همین آره اونام قبول کردن قبول نکردن. خودشون می تحقیق کنن علی رضا بر هو به سمت تخته شده که کنار خا مینظر اصلا تو خود تو بکش کنار من تا داد سراش خسرو خمیازه میکشه و علی رزا رو یه ترف میشین جوبه باشه به همه میکشه دراز میکشه پتو رو روی خودش میکشه نمیخوابی؟ چرا؟ این بچه بخوابه نمیخوابه که بچه جون بخواب دیگه بخواب دیگه پریسا مدن روی پلسکش برنشو میشینه خسرو هر بار اون دوباره سر جش که نکی بخواب اما پریسا نفسی میکنه اگر رزا خیره بهشون نگاه میکنه لالا خانه لالا خانه <تصفح> خسرو تارشو از کنار آکفالیان برمیداره و شروع به بزردن میکنه فریسات یک کلستش تیکن میخوره دست میزنه خودشو تکون میگه اینگاه میخواد برخزه Thank you. با انگشتش به اشاره میکنه خسرو تارش کنار میذار و به سمتی در میره در رو باز میکنه سه تا از دوستاش که پشت در باییم شدن قافل میکنه سامالش چا کرین ترسیدم بابا سامالش صدای تارت نیامد گفتم محابیت هم حاضری بیافتی صدای رادیو بود علیرضا مریض. خوابیده منم بهشنا میخوابیدم نه ترس بابا شوخی کردیم اومدیم بگیم دورمون نوبت توه در خدمتیم بسی عبدالزمیریم خدا بیا مرزه رب قاطی مرغا گیدینش اصری تو میدان ولیعصر و عیاله امضا خوش نشده، اجازه خودو کنه دیگه یا شبکه یا بابا الان یه دقیقه صبر کنین اومدین این انشاء به نفع جمع نیست شب شنبه باید یه قانون بگیریش تو حتما یاد در مهری هنوز توی تراس توی تاریکی نشسته خسرو توی تختش خوابش برده پریس آروم و معصومان خوابیده خواب میبینه که توی کالسکش نشسته و یه بچه خرس داره کالسکش رو حول میده بچه های مهد کودک همه که پشت سر کالسکه میدوند گاهی هم بچه ها کالسکه رو حول میدن پریسه از خواب بیدار میشه و ناآرومی میکنه خونه مهری مهری که توی تراس نشسته خوابش برده انگار صدای پریسا رو میشنوه و هراسون بیدار میشه به داخل خونه میره اما گهباری پریسا خواهه بیانم. خود رو بیدار میشه به سمت کالسکه پریسا میاد و پریسا رو بقر میکنه اومدم اومدم بابا چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ زن کنه آرامشونه توی اتاق باید می ده که پریسا دوباره بخوابه علی رزا را علی رزا از روی علی رزا می دهشت علی ها چی شده فکر می‌کنم بعد باید ببریمش دکتر. که طورش نیست که نخداش گریه می‌کرد. عوض باز دکتر میگه گوشنش چه چونه؟ نه بابا قبل از شام شیرش رو خورد. پاشو دیگه پاش رو یه دقیقه میگیر تا اطمینان دارم لباسام رو پوشان. پریسا رو بغل عین‌رضا میده به سمت اتاق. عین‌رضا پریسا رو کنارش روی تخت می‌خوابونه. پتو رو روی سرش میکشه. خاطر دیگه چیه؟ مادر را خندش گرفته سرشو میخواد پریسا شروع به بازی توی تخت میکنه حاضر شد هنوز نه خلیسا داخل علی آش واسه خوسف ریخته علی رزا بیرون و برای آوردن نیلیسا اون چقدر خسرو با مه قشنگ سفاز خونه ما ماهی گرنگ رنگانم بالا و پایین میگه. او با می‌ده حاضر شد؟ باید حاضر می‌شه باید خونه کش می‌کنم او بریم اکسا رو هی مو گاه نیگه شد؟ گاه بایست بایست ها او گلو چومه اکسه او او او او اینه کیکه عویزونه حارولویده بچه جان کی؟ سر چارلز چاپین همون که میگه پریسا به عکس میشه صورت نگه رو به یکی از عکسون میده. می می پریسا مامان جون؟ پریسا مامان جون پریسا؟ این اکس هم اینم خوده هم اوگه اینم خوده هم اوگه نیرنجا به بینه و انرزا شکلکزا زبطه سو روشن می کنه رو می که دست می زنه و خودشم شروع به دست زدن می کنه به سمت خسرو میره که شیشی شیر شیره پریسر آمده امن دیگه. خسرو. حاضر شُد بابا شب تا حالا خودش می اوه، رو به خواستون. چله کیوذر. حوس رو پنیسا رو بغل علی بود کنار کلاست نمی‌دونم والله اگه به استشات شک داری یا می ترسی، بدی به من بدش به من می‌ذاریمش همینجا میریم دیگه در آخر یه مأمور پیدا میشه میبره حالا اگه معمور نبود و گیری آدم ناتوفته چی بابا آخه ما که نمی‌تونیم اینو نگه داریم می‌تونی بعدا حوصله و وقت بالا و پایین رفتن از پلای داسرا رو داری نداری بگیرش بعدا با میبرم میذرم میز میزر، رئیس عوضه انتظامی رو میگم تحویل شما همین جایست تا من برگردم خسرو کالسکه کالسکه میخوام چیکار الان میام بابا خسرو به طبق کلانتری میره خسرو وارد کلانتری میشه معموری داره با زن و چندو بشهش حرف میزنه مرد و پسر بچه ایم پشت سر معمور وایی سدن خسرو از پله ها بالا میره روی پله ها متفاوتی نشستن همه منتظرن که به کارشون رسیدگی بشه زن و مرد و بچه هر کسی گوشه یا ایزده یا نشسته پیرمردی از روی نرده ها خم شده و داره پایین رو نگاه میکنه رو جلوتر میاد به دری میرسه جلوی کلانتری علی رضا کنار دیوان نشسته و با دوربینش داره عکس میگیره که خسرو و پریسا وارد کاتر دوربینش میشن علی رضا بلند میشه با سرزنش به خسرو نگاه میکنه علی رزا پاشو بریم شیش رو باز آوردیش که نموقت شلوغ بود که نوبت به بحانه میرسی بگو دلم نه این دلم نه ایمد یه چیزایی اونجا دیدم که حالم خیلی بچ حالا میخوای چی کار بکنی؟ فکرتو بکن دارم فکر میکنم میگم گناه داره به خودم اصلا تو برو به کار درست منم اینه یه کاریش میکنم دیگه تو برو بله متوجه هستم باشه پا تو درد سر نیازم ما رفتیم آره بابا برو علی رزا میره پریسا با انگشت علیرضا رو نشون که داره دور میشه. علی رضا تکون میده. از دور از خسرو و پریسا عکس میندازه پارک. مهری توی پارکه. به مجسمه مادری که رو توی آغوش گرفته خیره شده. گریه می‌کنه. خیابون. خسرو از مغازه بیرون میاد. شیشه شیر پریسا توی دستشه و پریسا توی ماشین در آغوش زن و شوهریه که مسافر خسرو هستن خسرو سوار ماشین میشه شیشه شیر رو به اونا میده که به پریسا شیر بدن پارک مهری توی پارک سرگردانه وی نیمکتی میشینه کمی دورتر علیرضا روی نیمکت یه در حالی که دوربینش به گردنشه به خواب رفته ماشین خسرو مسافرهای خسرو توی ماشین بی سبرانه منتظر خسرو هم. خسرو در حالی که پریسا را عوض کرده و شسته کتش دورش پیچیده از مسافرخونه بیرون میاد و صور ماشین میشه پارک مهری روی نیمکت نشسته به محبتی خالی بازی بچهان نگاه میکنه و گریه میکنه علی با صدای گریه مهری بیدار میشه و با تعجب بهش نگاه میکنه نیمکت بلند میشه از مهری دور میشه خسرو کنار پارک محلکار علی رزا میرسه ماشینشو پارک میکنه با پریسه از ماشین بیرون میاد داخل پارک میشه از پله ها بالا میره خسرو به کنار آبنما میرسه اما علیرضا اونجا نیست علی توی یک که تلفنی. نگاه سلام از من دست بباشید مزایم شدم توی مجله خوندم که شما به سلامتی میخواین یه فیلم کومیدی شروع کنید تبریک میگم منم بازگیر نخشایی کومیدی هستم رشته یه اصلی این پانتومیمه برای نخیل پانتومی نه پانتومیم میخواستم از اجازه بگیرم که اگر جا از منم استفاده کنید خسرو انگل رزا رو پیرا نکرده خدا بگم شکاره کنه جلیمش کردم ج بفرمایید بفرمایید چند تا سفارش می شه؟ آخ آو 3400 تومن بفرمایید مثلا کیچن چیو شو دارید مونتاژ میکنید ولی اینجا نش... نوشته که ش... شما اصن بعد ازش شروع نکردین. <تصفيق> من مجللا علا خریدم. <تصفيق> ماشین خسرو. ولی سو توی صناری کمال خسرو خودش. حالا بله خب روی صناری خلاص تابلو من نداشتم همونجا حالا که میگیرم دندوناتو خرد میکنم. شکایت میکنم اینکه های حیثیت. بچه ولی اگه ثابت نشه هم پولامو از گردن میکشن پایین هم بساط به جمع میکنن. ادعای حیثیت. آخه کونو مسیج؟ آقا اون حرفاتونو بذارید تو پاسگاه. اونجا معلوم میشه حق با چیه؟ سال کار جل حالا نم میشه خدا حق با چیه؟ نه سلامتی هم شریم ام هست. هم شریم. اداآوتان خدا جلات شه؟ ای سوپدن حالا این دیاکیمین یشتن گشتن من, من سالوسان توهمات ورسان به خدا جلات شه؟ میره این آریه دن دولتی من نم مربوط. آیا وشتر صحبت میکنه؟ برات شفافه؟ بساتم داخله بود. جداییش ترسان. آیا باساتم شهرداری من. شهرداری. شما حال دریم عشقی برمیگرده بچه خوابه بچه خوابه به خودتی میگم بچه خوابه باز داد میزنی بره پایین یالله چی چیره برم پایین شما ماره گرفتی راست بیگه دیگه بچه خوابه من چی کار کنم سرخای جام بچه رو میرم مسافر کشی آقا شما بردو شما به بچه خب رسیدیم دیگه این چند قدم پیاده میریم مرد که پیاده میشه نزدیک ماشینی بهش بزنی مرد دیگه کرایه ماشینا ماشین حساب میکنه اونا پیاده میشن خسرو پلیسار که داری گریه میکنه آروم میکنه سالن تا آتر به همراه دوتا بازیگر دیگه روی صحنه در حال تمرین هستن کارگردان در حالی که پیپ میکشه با دستیارش کنار صحنه نشستن چاقه و ریشو پروفسوری داره ازی روزا در حال بازی پانتومینه انگار داره تناوی رو به سمت خودش میکشه فقط من حرف میزنم نه میزنیم مطبعه شدی با سر اشاره کن اینجوری زخامت و تناوی رو با دست نشون بده با دست اینجوری خسروب و پریسا ورده سالمشه سلامانی روزا خسته خسته نباشی خانم خیلی خوب بود یه دلم برای تنگ شد گفتم بیام دنبالت با هم بریم بهت احتیاج دارم علیرضا رزا حرف نمیزنی با اداد هم ورده جمعا با فرسته دارم که بله اما کنایین نمیتونن کلاخی شدم بابا علی رزا اینکه آقا اونجا چی میخونی شما مگه تاک جای بچیش این خورد منتظرشم تا تو بیایم علی رضا رو به کارگردان با دست اشاره میکنه که خسرو دوستشه علی رضا ناراحت میشه. خونه خسرو رو. علی رضا شیر درست می کنه. خص پوشک پنج رو عوض می کنه. قطه پ میریم یه توی یه قطهنج میرییم. شیر خوش براش بگرفتی بگرفتم شیشه پسونک بگرفتی بگرفتم کهانه و پوشک بگرفتی بگرفتم گربه و موشک بگرفتی خوش و رو روی پشتش سوار کرده و مثل گربه حرکت بگرفت. میکنه پریس خوشش میاد بگرفت. علی رضا از شیر خشک پریسا میخورد. دوباره شیر درست میکنه. خسرو پریزا رو روی پاش کنه و تکنه شیش شیرش رو مدان میدازه. علی رضا تار خسرو رو به دستش میکنه. خسرو شروع به نواختن میکنه. علی رضا رو, رو روی پاشت میده و پریسا در حال شیر خوشن. شمی دو لالا خسرو پریسه برده توی حیات داره روی تراسش بهش راه رفتن میگه بودن. توی دستشویی با ماشین رشتراشی صورتش اصلاح میکنه هیچ کدوم به رادیو توجه نمی یاری به فای که این دقیقاً اون یکی که فاصله عزیزان، از دوستان، از یا این صدای خانم محمودیه. شروع کرد. صابر که یک فصو علی رضایی بودنش کنار رادیو ایستاده و گوش می‌ده. حسین نه. خونه‌ی خصوصی. علیرضا حیات میشه. با هوله‌ی صورتش رو پاک میکنه پریسا توی بغل خسرو در حال شادی و خنده بود دست دادن. می‌رادسه. <تصفيق> <تصفيق> خونه مهری. مادر مهری روی تراس با چادر سفید به مهری که از در خونه بیرون میاد نگاه می‌کنه. مهری جون! مادر، یه وقت منو بی‌خبر نذاری. دلم شور می‌زنه. چش بودا؟ خودش رو توی خال سره بقیل پریسار رو گرفته خود نه می کنی پریسار را هم بره علی و را می دیگه مبارکه حالا بیا اینجا بشین با هم صوبونه بخورین آف برین آف برین به تو که دیشت یه زب خوابی دیم خواهم که همه شکر خوابی حالا پریستا خانم چی بخوره؟ شیریشی که خورده بیا چهار شیری برش درست کردن توش کک تریف کن همون ام. دیگه کم کم باید قضان بخوره آها سوپ بلدی درست کنی؟ ام. چند تا دندونم داره بس برای شونه کباب درست میکنی آها. اینا که دندون کباب خوری نیست شیریه آها. بیا بیا بیا آها. هم, هم هم هم هم کنه. تام کنه هم کنه تام کنه, هم کنه،, هم کنه؟, هم کنه؟ از میدم می چون امشب شده در میگم منم سه ماشین بخره یا با من توشه مسخره بازی در نیار یه نفره وزه سر جادواشو رو اما مواظب باش سرش نیاد بازیگوشی نکنی ها. افرین هم کنیم. اوه پری، هم, هم, هم. او. محắn… از بچهای معتقد است که یکی دوتا عکس ازش گرفته. خوبه می شتابان کوچی بر برمی داریم. سعی تلفن ازش مگری. ماشین خسرو. پارسیتی باقل خسروی که دو باندی من جلوتا دو تا مرد ایستادن. ا. سوار یکی از مردا کرولانه. هر دو هم با ایما اشاره دارن با هم حرف میزنن. پریزا در حالی که توی آغوش خسروه برگشته و به اون دو نفر که روی صندلی پشت ماشین نشستن خیره شده براش جالبه که اونا با دست و سر با هم صحبت میکنن مردی که میتونه صحبت کنه متوجه پریزا شده با ایما اشاره به مرد دیگه میگه امروز صبح توی برنامه سلام صبح به میگفت یه بچه با کارسکش گم شده همین قطتییم هم بوده مرد کرولال میگه نکنیم بچه خودش باشه میخواای بپرسن؟ مرد دیگه جواب میده نه بابا این بچه یه آقای راننده است معلومه مرد دیگه میگه شوخی کردم ماشین بزرگ باری آبی رنگی از فرعی توی خیابان اصلی میاد. خریسا با دیدن ماشین جیغ میکشه. آقا این که تازه رانندگیه نزدیک بدوشیم. ببخشید. حواسم به شما بود. جلو مون ندیدم. حواستون به رانندگی باشه. بچه‌بغل که رانندگی نمی‌کنه. <تصفيق> چش. براش صندلی میخره. داداشون <تصفيق> جلو بغل گلپوشی لذت کنید دیگه. اینم این. ده سانت. تو دیگه دیگه. یه ذره دیگه دیر تا خراب کردن، من اون چوالای سر اونم. خوشوکی نمی‌گوتت، جدی گل فروشی تو. دوماش تو علی، شلوص. تو آتی کار می‌کنی؟ چرا کار نمیکنه خدا بیامرزه؟ با نه بابا عروسیمه ماشین عروس خراب شد گفتیم بی خیاد عروس با تاکسی میبریم سورپیریزه بفرماییم گل میزنیم ها عبکه نداره نه خیلی خوب بچه ماشین ماشین خسرو گل زنن پریزا توی دهنه دومت خوابش خب بالاخره در خونه هر کسی رو میزنه دیگه یه وقتی نوبت شما بود حالا اما اما اونم چه وقتی دیگه دیگه دیگه, دیگه. <سید> بله بله بله, بله. خب فردا نوبت این خوشگل است پس فردا هم نوبت نوبتو این چی نهازه ثابیده آقا رسیدیم خیلی منوی این بقلا نگهتار مرسی مرسی رب نشید خودرو آروم متوقف میشه. پریسا رو از بغل داماد میگیره. داماد با دست گل گلویال از ماشین پیاده میشه و جوره در آرایشگاه میایسته. زنی میره. مادر رو پای میگاد. ماشین پارکینگ اون ماشین خراب شد، ماشین شد. او داخل ماشین عروس و دومات روی سندلی عقب نشستن و پریزا توی عروس عروسه خسرو رانندگی میدونه لباستون رو کثیف نکنه نه تمیزه عزیزه خانومه چند تو داری؟ همی یه دونست خانومتون کار میکنه؟ تقریبا آخه نیبونه که باید تاکسی بزرگ باشن هم همچین گرفتاری همی داری ما حالا کتا اون موقع ادارمون اون داره میگم خیلی هم رسیدگی میکنه ببینیم خسرو وارد خیابون فرعی میشه که سالان تاعتر علیرضا رزا اونجاست خسرو توقف میکنه پیاده میشه ببخشید یه دقیقه بگم بیاد بچه رو بگیره و بریم فارس میکنه. آرسون عروسی رو ما حساب کردیم خدایی اومد 5000 تومان تا دایو شهر چیزین میگن یه فکری هم به حال خودت می‌کنی با خودت ببرش دیگه گند نداره بهش خوش می‌گذره در بستی بابا عروسیه راه برام گرگی میکنه آخر شب هم شیفت درمگا هستم تا خود صبح نمیشه بچه خسته نمیشه. میبخشید معطل شدیم بدینش به من خاصتون کرد او رو بابا تو هات رو بازی میکنه؟ نه این عموشه میذارمش بیشه عموش بگیرش عموش. <تصفح> <تصفح> سلام علیکم مبارک بشه <تصفح> شبه خوشبخت بشه مشالله <تصفح> نوبت شما خدا از دهنتون بشنره ولی آسیاب به نوبته از بازایی تا کوچی <تصفح> اول خسرو خواهم ایشون مجرد هم؟ نه خیه هر جفتمون از اوغلی بچه. ما هر تو عموشیم میگم آقای داماد دست راست تون سر این پسر همه ای ما بلکه ما هم یه سوره رسیدیم همین یک شب دستشو بند کردیم بچه با حالیه <تصفح> ما رفت ببین شیرشو تازه خورده خشت خشکم است خیلی مواظبش باش بشید وای به حال دکه ازت خدا روز نگیر ببین علی رزا صورت رو نبیزه خسرو حرکت میکنه علی و علی رضا و پریسا پشت سرش دست کن میدن. خسرو عروس و دوماد جلوی جده در خونه پیاده میکنه کنه. تمام مهمونا با اسپند و نقل و گل و شیرنی اونا رو به داخل خونه می همگی از پله ها بالا می خسرو خیره به اونا نگاه می توی خیالش خودش رو می بینه که با لباس دومادی داره کنار عروس راه میره بر میگرده میخنده شهروازی علی رزا پریسا رو روی دوشش گذاشته و دو دوتا بازوی روی استخر آب مصنوعی ایستاده. مرد کوتاه سیبیلویی رو به جای خودش گذاشته داره به اون یاد میده چطور شعر بخونه با مردم حرف بزنه کوری بخونه خیلی خب بقیهش هم به استعداد خودت بستگی داره ببین که تو بیندازه همونو بگو مثلا اگه دیدی یه مردی داره توپ میزنه بگو که من مرد آقل زروم بردم یه شبه دیگه بابا جون آخه خیلی سخته نه این چیزا رو بردم همم میترسم آخه ترس نداره عزیزم؟ من یه دفعه که بیفتی ترست میریزه نگاه پریسار از روی دوشش پایین میاره و به سمت جایگاه پرتاب توپ میره با یه پرتاب به هدف میزنه بازوها خم میشن و مرد داخل استخر آب میفته پاساش علی رضا سوار پله برگی میشه و به سمت طبقه پایین میره که یه دف کارگردانی رو می‌بینه که روی پله‌بندی کناری به سمت بالا میره. <تصحب> من شما حالتون چی چی از بازیگرایی خیلی بازیگر اصلیم تئاتر، پانتومیم کار می‌کنم، سینمایی چیز اگر فرام که یک تجربیات سینمایی یک دنیا میشه. کارگردان بدون هیچ حرفی به کارتی علی رزا دور میشه خیلی متشکرم خیلی ممنونم چی شانسی امروز به من رو کرده. خیلی ممنونم پراموش نمی کنم خیلی متشکرم شرمنده رو کرده علی کوچیکی برای عروسک بازی درست کرده دوتا عروسک کوچیکو که کو حالت دست کشی هستن توی دستاش کرده دو صحبت میکنه انقدر گریه نکن عزیزم شیر میخوای شیر میدم خوابت بیاد میخوابونمت وای آ ساز میزنم زنم برات خوشگل عزیزم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پردم پریسا عزیزم تماشاگر محترم کاش نگی نستی امشب چه اتفاق مهمی برای من افتاد و احساس منو درک میکردی من امشب به اندازه یک قدم خیلی بزرگ به عشقم یعنی سینما نزدیک شدم به نیش اون روز برسه که امو از روی پرده جادوی سینما با تو تماشاگر محترم و صحبت کنیم در روز امو علی بازی سینما بر پرده جادوی سینما خواهد در اشی اونا اونا اونا علی رزا دوباره زیر میز میره پردهی که کشت آویزین سفیده پرده میره چرا کشت مدر رو روشه می این ساده علیرضا شروع میکنه برای راهی پیدا کردن سایه اشاره کردن یه جارو برمی‌داره تکونش میده بعد مثل یه پرنده بزرگ حرکت میکنه و با دستاش بال میزنه حالا با جارو و بدن شبیه مرغابی رو در میاره سایهش حرکت میکنه خس در رو درو باز میکنه وارد خونه میشه همه جا تاریکه علیرضا خوابیده پریسر هم کنارش خوابی سلام. سلام بیدار میشه ناسی خوابه بارو بخواب خیلی خوب حالا کارم کم بود یکی دو ساعت دو ماشه خوابیدم بیدار میشه بارو بخواب. چی کار میکرد عذیت که نکرد انی رضا به همراه خسرو و پریسا وارد مغازه ای میشن که وسایل بچه ها رو میفروشه. توی مغازه پر از تاب و کالسکه و صندلی ماشین برای بچه هاست. ببخشید این چنده؟ 1200. ماشین خسرو. خسرو صندلی ماشین بچه رو به صندلی کنار خودش نصب کرده. پریسا رو داخل اون گذاشته. علی به همراه یه مسافر دیگه هم روی صندلی عقب نشستن علی به جلو خم شده با پریسا بازی میکنه، خسرو توقف میکنه، مسافر پیاده میشه، به کنار شیشه جلویی میاد که کرایه ماشینو ماشین از جیبش در بیاره و به خسرو بده دستشو که داخل ماشین میکنه، پریسا به جای خسرو پولو می خسرو پول از پریسا می خسرو ماشینشو رو پارک کرده لی روی صفحه ماشین دوربینش رو تنظیم میکنه که به صورت خودکار عکس نداازه. خودش می و میره کنار خسرو و پریسا میسته. دوربین عکس میندازه. خسرو عکس فوری رو توی دستش گرفته و بهش نگاه میکنه. خاب مهری از دکه روزنامه فروشی روزنامه ای رو میخره آزش میکنه. توی یکی از صفحات روزنامه عکس پریسا رو به عنوان گم شده حسیزم کالسکه پریسا کنان یه دهکه دیگه است پریسا روزنامه رو برداشته و داره مشارش میکنه عکس پریسا روی صفحه پشتی روزنامه است چرا روزنامه فروش با عصبانیت روزنامه را رو از دست پریسا میگیره خود رو با صدای گریه پریسا از مغازه کناری بیرون میده آقا بچه شما جوانو چیه؟ روزنامه دوزا وارو کاری شد آقا واره کرد که با. کی بیا این پولا نکنه ما نكنه بپر میزن بیا ججی هم راط کاری نداشت ترسوندی بچرا آوردتم من ماذر من که نظری نداشتم خونین خسرو خسرو جون مرا یافتم راستی برو رو به سلامت امشب تمرین آخره باز یا میاد اگه تونسی تو تو پریسا میاد اگه پریسا نخوابید میآین خدافظی خدافظی بای بای خدا فز و چه خوشگه بیسا. چه خانوم مثل تو یک دختر گل هر کی داره تیر نمیشه این جیجی ها شو ببین جیجی جی بیا با این جیجی جی های تازه تاتی تاتی کنین آفرین تاتی و تاتی رو کور گربه می پره رود گنجه آسه برو آسه بیا پریسا خانوم دیر نمیشه مثل تو یک دختر گل هر کید داره که بشنزم خود تو بس سمت در در رو باز شوهر خالش با معنور آواهی و میکی پشه سلام خسرو جان نه ترتیه سلام سفا با هم بچه انوز توست ماست بله پریسا پریسا مهری پریسا رو میبینه و به داخل خونه میدوه پریسا رو بقل میگیره خسرو و بقیه خیره بهشون نگاه میکنه اکسشه تون روزدامه دیدم جان خسروی یک ساعت تمام بخالت که زدم تا اجازه در برم کلاتر مال محل اطلاق دارم خیلی مچکر بابا خواهش میکنم راستی شیرش خورده آرقشم زده دیگه داره راه میفته بهش شادت کرده بود همیگه سوار ماشین میشنم حرکت میکنه. پریسا توی ماشین که داره دور میشه گریه میکنه علی جلوی آینه ایستاده در حال پاک کردن گریم تئاترشه. عکس سه نفری اونا روی آینه چسبیده. علیرضا با بوقس عکسو نگاه میکنه و صورتشو پاک میکنه. از توی آینه خسرو رو میبینه که داره تار میزنه. کالسکه پریسا جا مونده. هر دوتا با بغز به کالسکه نگاه میکنن. علیرضا پریسا رو یادش میاد که چطور توی کالسکه گریه میکرد، خودشو تکون میداد. روی تختش میشینه دستشو باز میکنه خست رو هم تار و کنار میذاره روی مبل لم میده هر دوتا سکوت کردن و فکر میکنن. با صدای زنگ در خوشحال بلند میشن و به سمت در میرن دوستای خسران واضح که قرار بود داره هم جمع بشن آمدن هیچ کدوم یادشون نبیدن دادم گفت. که صادق که با هم اونا دو تا هندونه خریدن و آوردن. خودشون میرن توی آشپزخونه و شروع به پذیرایی از خودشون میکنن سازاشونو در میارن خسرو آروم کتشو برمی داره که از خونه بره بیرون. علیرضا باش میره. دوستای خسرو دور هم نشستن و شروع به ساز زدن میکنن. خسرو با علیرضا سوار ماشین میشن. حرکت میکنن. توی خیابونا میچرخن. خاطرات پریسا رو مرور میکنن. هر دو تا ناراحت و غمگینن. حیات با رو بازی میکنند. خسرو کبوتری رو به دست پریسا میده علیرضا برای کبوترا دونه میریزه. یکی از دوستای خسرو که پیرمرد موسی‌پیدی با تمام وجودش تا میزنه بقیه دوستا کنار هم نشستن. بعضیا روی زمین بعضی هم روی ماب دارن هندونه را قاچ میکنن. اون لذت میبرند. خسرو و علیرضا یادشون میاد که توی حیات هن خود رو پریسا رو بغل کرده علی به سمت اونا میدوه خود رو عقب عقب میره بعد خود رو به دنبال علی میره حالا علیرضا فرار میکنه پریسا قهقهه میزنه دست میزنه به به که نیست علیرضا. حیات محد علیرضا پریسا رو روی اسب کوچی کتاب میخوره گذاشته و تابش میده. مهری با دو تا کادا از در مهد کودک به داخل حیاط میاد. سلام خانم خانوما، یاره دی وفا آره؟ مامان پیدا کردی، گشتی رفتی بدون خدافظی. میخواید ست نداشته باشه؟ ها؟ کوکو کوکو کوکو میاد. میوسته بفهمن قالب مینا ده. خجالت میدین. من که برای گرفتن مجدگانی نیومدم علی از جیبش اکسی دارم این اکس یادگاری از دو نفر نیست چی فا دو نفر اون سری پریسا رو نگاه کن چه قشنگه خیلی ممنون زحمت افتادین راستش ما امشب یا فردا شب خودمون می‌خواستیم بیایم برای عرض تشکر خدمتتون حالا رو کوتاه‌کردیم ولی من برای عکس نیومده بودم اجازه من از این اجازه بگیرم اگر ممکنه نگاه کنید ما بیان پریسا رو ببینیم والله اشکالی که ندارم اما میترسم دو هوایی بشه برای دو هوایی شدنش هم یه نقشی خیلی علی صورت پریسا رو میبوسه و میره مهری با خنده و عکس خسرو و علی و پریسان رو گاه می کنه سالان تئاتر در حال اجراست علی رزا داره پانتومین بازی میکنه. خسرو و مهری کنار هم توی تماشاچی ها پریسا بقل مهریه. همه میخندن و دست میزنن پرده های از پشت علی رضا باز میشه علی با پانتومی شروع به کشیدن تناب میکنه. با سختی تناب می‌کشه. میکشه. پرده باز میشه. زن و مرد بازیگر توی صحنه زن کنار میز و دو تا صندلی ایستاده به مرد نگاه میکنه که کتشو داره در میاره. مرد کتش رو به چوب لباسی آویزون میکنه. زن به سمت آشپسخونه خیالی میره. در قابلنه خیالی رو بر میداره. به سمت میز میاد. شروع به چیدن میز برای شام خیالی میکنه مرد با عصبانیت ضرفای خیالی رو از روی میز به زمین میندازه کارگردان و دستیارش و علی رزا پشت پرده نگران اجرا هستند زن سینی چای خیالی رو میاره و لیوان و چای برای مرد روی میز میگذاره مرد دوباره با دست لیوان و سینه خیالی رو روی زمین میندازه زن ناراحت و غمگین روی زمین نمیزنه و شروع به گرده میکنه نوری از آسمان روی صحنه میتابه زن بلند میشه وسط صحنه میره دستاشو بالا میبره صحنه تاریک میشه بعد از چند دسته دوباره صحنه روشن میشه عروسکی توی دسته زنه به عنوان بچه زن خندان بچه رو به آگوش میفشه شروع به تیکون دادنش میکنه به سمت مرد میره. بچه رو به مرد نشون میده. مرد حیران به زن و بچه و بعد به آسمان نگاه میکنه. بلند میشه و بچه رو بقل میگیره. مهری آروم پریسا رو به خسرو میده. خسرو پریسا رو در آهوشش میفشه. شنوندگان عزیز امیدوارم از فیلم زیبای دو نفر و نصفی لذت برده باشید عزیزانی که در تهیه این برنامه همکاری داشتند آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار و آقای فرشاد آذرنیا رو تهیه کننده و من سانا صالحی که تنظیم و اجرای این کار به عهده داشتم تا رادیو فیلمی دیگه نگهدار